تي باسترين هاوري خنويكتمو گران بنيو حكمتكاني نو سيندا كتي چشتيم جنور نو سينی حجر مکرانی خوند نوئ اومید علی تو مرکز دنی، دلیار سلیم. عزیز شوتن شد. لباسی چهارمی خواند وقتی به چشتی جهوری حجر مکریانی پیتندگی نوا فرمون لگلمان بند. حجری مکریانی لسر گرانوی سرگوزشتی جانیخوی بردوام دبیو دلایت چون که دایی که من بنخوشی سیل مرد بو ترسی اوها بو کم نیش گرتی بیت موا دبویت ها دست در رو دلوی لحوای صاب دبجیم للای کش موایده وست دویست کراکی خلیسکو خوی شرستنی نبیو با جیان زبروا خوب بگره همو بحران و همینان لاده یاند چوما مسجده ما له واری مال مام سید ک سید محمد لا جنینو بو من پیم دغوت مام سید یا لګوندی سره ونن خالانم دژم در رسید یانی من دالانی لادی هج یانی کی شرستنی نګته پادشاه بیا جوق من دال لدی هل تا وه لا و بادشت شو دا برلا د بوین هل نن مل بده سره و دای بو بچو بیستانان، به دا حل گره خو هر باسی نکره ساعتیک پیش گاران هاتن برو گاران غردو لره توشی بو پیچی سریان تیتولا پیشتین دمالی کریکی روتی بیجل حالینو خوی باوی سری کربرو مال رادکا جوت داوی حال دا تین رینه عذابو خوبگره نکوی رنج پتر لبی زار لوگال تا خوش سرمشکابه. برامسرش سرشکان بر رجی کل قردن دا خلا تا. کنم دوها و عمرم هاون. حمد مینو مامان رحمان کدجال اوان زور کیفم ساز بو. حزم دکرد هر که زور بلندی بچمسری و بزنم لو دیو چهای. زور چرب تریم میلیارم دکرت و بچیه هل دگرم. جاريك لو جارانا كادميز بچ مصردون دي قوشي كيوهومام لماسوه زورم پیچوبو مالا مسید مسايد وان زاني بو مار لدشت پیوه داوم ببوهرهو حوارو چن کس يان خستبواشوانم کبم دوزنوا اوان لیم نهومين بوبونو بخوم حاتبو موا دغه شوانی مالا مامه سید د شومه برمر نویو گژملې د پرسين چیرې خوښ مله د وستن بوناسین حیوانن ب بومه پاسپور ښوان افنی من له دا کړدم ننو شیرم دغل د خور نو لسره ارز رو د نستمو طواو نازدار شرم له بیر د چو خانه چونم بسره چبو ما حجریمز ګوتی حبا سرا کباب ما فقه ما مستقيم منن پاسپورت بر زبالای ریش پانی مورشو لود برانی بو که به سعید سعیدشتا منشور بو یکی تریش لای اوی دخوند یکی توپالایی گردبنی چاوزردی گوی تشک برا بو بنایوی فقی بایز بر لهمو کاریک فیریان کردم کچون اوارانا بمالانو گررمو هاور کم نانی فقی الرحمتی خواته لب نانی گرگ بست مو بیهان مو حجره بشه روزش شرم کردنو میگم میگ لوسن حتی جوان راحتم بریار دره درسی گلستانی سعی بسایه بخونم جا پاشان بمانه و پیمبلن قول ان اول جی خوی دبی هر ختم کمو زورش مروان بی ملا سعید هر عربیک تی بی دزانی تنات نید توانی نه خوی برروانی مشق و و فرسی ملیفق بایز بایز بایز روژک و اگ بلای نگهانی مندالشان هینه حجره که بطمان لمن باو خوشترو ببالا من کرتباله تر بایز یکی سوی چاوزید لینبو با اسرائیل دبو اویش گلستان بخوینه هتیو و زیربو کنه بیتوا من به هزار گیرونی را دو ختم روان دکرد. او پردو و دو پر ری تیده پران و اگه قدرتیوا بایز بایز که بو اوهیان دوهیان روان کردو تو هر ده. و تو منجم منجا جدی. حالا برخور ول اخواه د پراموا، او بد فرد میوله کال دنیا بیتو. نبی ایش عبدالرحمن کریس و فیمین ابو. کل دوار رج دا بنای زبیح نسره. زبیحی من فخی دایمیو رسمی نبو. دست دخون دو و مالی خوی. ورد ورده، پیک و بون عشناو ل در سیگالستان یاریدی د دا دامو، او عشناه تیپترلا سال دامی کردو استعش هر دوست ما. تاو نازانم چه سالیگ بو. دولت فرمانی دابو جگل ملاوفقه دابی همو کس کلاوی پهلوی لسرنیو میزر و جلی کوردی قداغیه. ملاوفقهش دابی قاقز حاکم شارین پی بی کلا کلاو معفن. او حکمه با پولیس دولت بازارکی زور با قازنجی پیکینه بو. هرکس تیتوالا پیشتیندیک بزگورا میزرک با قدو سریو با. یان پاتول طول رانکی نیفک شوری کوردانی بوایا، بدارو خانچی بردبونه یعنیو ببیر برتیل رزگاربونی چتون بو دی خودایا ماموستان بلا سعیدو یمی چره راش چی بکین پش مقومقو مقو یکی زور قرار دره بچین خزمت حاکمو قاقز وگرین ملا علی کی کوری بانگ داری مزگو تگش گوتی منیش دگل تان دیم مبارک بی پش نو جنو رویشی گرم ماموستان و فقه بایزو ملا علی کیورو من ملی ریمان گرد پیرسیار پیرسیار مالي حاکم مندوزي و به ون نشو نه اداره کي نا زنم لدرګه هي زلامي غال درو مندا کس بدنګ من نه نات ناچر منا سعيد ببردو ملچره با سا کي دستي ورګرانه کوتاني درګه توماس اما درگه پشتو يو بسر تويغه ده دکرتو کس ليوه نا چته ماضي حاکم آخری با درنگو خوری برد و عصایه حاکم لغو را بیخو راده پرلو شیطانه با پیجامو رادکا بزانی لم جنگی گرمایه دا چقوماوا درگه کرایاوا کابره اکی زرتزلامی سرهو دادگود برازی دا بستراوا درگه کرده او با فرسی گوتی چی تنده وی من لدیتنی حاکم اونده ترسام دلرزیم ایتر نمزانی او سه فارسی نزانه چو ننوران دایاوا هر یهند دو تا زنم حاکم بگ به همونی ازی خوی نرندی. بران لبرچاوم گومن. درگاه تغ بسیار داده او گالای داو یه مدت است لگونان دریاشتر لپش درگاه مینوا. اتر جوانیسی قوای او چوار قوای دستی پیکردو لونج لج برای مزجوت پل بوی نوا. معمستملا سعید طاو تام دایگرت بو. دیوید جهندم کدری کردوین بکنی بابیاوا. بلند و تاسو چاوبوک افراکاوته و قساوت د لیدا ګرتو هر دوای بن دیواني د خوندو خپل په بريده کړ ک قساوت برهول دا کا نخیر قساوت وای نه ګرته بو باقر پورته بن لیو ل دلی در پره چې هر اوه لم شاره بروینو په چینه خانقای شرف کند تا قساوتی کافر تفروته نبه بابم زوري کیف حد ک د ګلون بسمه خانقه کشوینه شي پیروز او خوندني اوه برکتی هيا بوختو پر اسکا هیلکی یلکی کولاون نن امدکراو بر بیان یک برو خانقاله شار درچوین و د که حاکم لداستان نو سیندا دستکی بلای هبو لو روجا و کیم چوبوینه خدمت یو دری کړد بوین بو همو کس کی که چوبونه لای جربووه کور زور سیر بو من لکاری اداره مندو لمال نیو روج مخواردو نوستم بگر مهوری درگای پښتو مال الله راپریو لا مو ابو خانبجیکراوم به هزار تر سولر زو طلعت په درګام کړو ته ببینم یک دریش یرش غازی توپ نه چګردلای قوت شو رګ با آسانه بیاشکه خاتون نه یالم کلاوین ده سنن به عمرم دیمه نه اوند سیرم نه دیو به عمرم هندش نه ترساوم ل خانقاه ل حجری دو متر ل دو متر دا د ادم زریو خوندن دستي فکر دوا ما بوستانو او جردرس عربی لتصریف زنجانی اوامل را برو نموزج و حمدی رویشت هر درسی کم دخوین دبون لبریکم بلا ما خود تگیشتم باسی چی دکین نخودای تو شایده هر تقم لسری ودهاتو لاموابو بریشکده خون جاره با بزنن او خانقای کچن جرنوان بردوچیو چون دا مزرهو او روری کمن دیتوما لچ بارگ دا بوا. یوسف مانوی کری ور زیر اکی خلقی و ماوتی شرباق کردستان کردستانی بردست عثمانی او و عراقی استایا. چوتا خویندن؟ بواتا فقه. بواتا ملاو اجازه ورگرتوا. خوی گیندو تاویلو لای شیخ عثمان سیراج الدین بواتا موریدو پلا پلا سرکوتو تاکراواتا خلیفو هاتواتا برهن. که گوندکا لا ملبندی مکریان موریدی پیدا کردون. زویل آغا قبل کردو به مریدان رنه و هیناوه لنانی رنجشانی شان مریدان میوانداري مریدان لاوشي کردو پولو دیاری ور نګرتو دا وای کشف و کرامت نبوو هموشته چې حوالہ باکتی بشرح کردو ل شرع به مو کله نبو مالانی ولات بدلو داو هميان عاشق او اقریبونو بونه ته مرید دي خلق رمکیش بشوین ملایاندا هر جون هیناوه جوتیارو ورزیری بخیری خواه روش بروش زیاده بونو دارایی تکیه پره گرتوا. ملک راو بشی آغایی لینه دروا. پاش چند سال که گوندی شرفکن بوت ملکی شیخ خانقا لقشلاغی شرفکن بنیت نروا. جگل صوفی ترکدنیا فقیه و ملای زوریشی لیکو بوتوا. که شیخش لا سالی هزار و سیست و بیست و هشتی کشی منگی خانقا و نانی میوان و دانشتوان لا موقوفجاتی خانقا دایبینده کریو صوفیل ترک دنیاش کارو بار بره و دابن گوری خانقا شیخ محمدی کوری شیخ که ملیکی زوربنابانگو داوی شیخیاتی نکا در سفاقی دلاتو فتوه شرعی دردکا دلین دا پیش دا دو صوفیانی ترکی دنیا اند او خو من دقبل خدا کړم خدمت شیخو خانقانو لمبوه زور زور بون بل مور او جنا کم خانقانو ناسي او جوړه ترکه دنیا انا کم بو بونو و را چلا کی محمود بون دلون جر یک شکاکه که تو صوفي رباني خانقاي دي تون تو شي دي دي کی مسيحيانو بو کا پر لکی جي خو خدا کړدی بمرده که تویشتیری ایسا پیغمبریان پیدالن. چوتا بردر که دیرو گوتویا هندک نری محمد پیغمبر لخانقه هن با او تویشتیرانه خول لوان چاب کن. عزیز رابیشل دزبو برلانوی جیشیوان زیکی سعاتک دخود. دیگود کمی خوی پاش رو جاوا شوم دپرینو تا بینی خوی نایو بود زیکم بکاره. زورم لوگ سب به رو گرد کنوسین شوم ها با او کارم دکرد. شیخ محمد نویکی فرعی بو همو کس د دېته و بمني د ګو جوجلا مله حمدمین نویکی نه نه بود فريقه کر سر ځلانه کې لود کړو یبو غلطي خلکی خانقاله سره او بو خو دې ګو خوده خلکی درس کړو کوماندو بن هندي کې هر بو درس کړدون ماندوکان به حسې نه وو پیان پیپ کنن زوړ چې رو کې سري هن خونی یار را و کپی غم برها تو تخونی فرمی آ، ملا تامای دحه علی حیات ماون، مام جعفر و محمدیار، ترکی کویرسونی، ملا سلطاني سلطانی، ملا حسینی، کاکی ملا زاده، حاج مام حسین منجر، کاکیش خلی، شیخی شامي، سيد رشید شاعر و زناب بانغو چن کسی وابون. کل عقتو و تنبل و توازی نان خوری بار پیگش هت بیشتر فریابن کنانو دوی خانقاویم دخوردو قشن ب دیوار حال دفع سردو بیکار راند بوار با قولی معمول خانقا و کشتی نخوابو هرچی بتیسته تی دابو شیخ شامی نامی ملا مصطفی صابلاخی بو ترک دنیا لحوزری کدجی لو ابن الحاج خواند بوها حضی دکر چای با محمدی روجک لاریک اسمی لوسی چاوگورا که خاله کلاس دعوت دکا حجره. لوداله من سیدم نام محمده. تاملات دکه تدست میشگرد نودیتوه حتی نمایه. پل دبیو پرسیار دکا دارن نمادی وا. خیال دکا که آم کرلو محمدی مهدی بو. در لشام زهور دکا. با بسمه پیو شویی وا. کلوبالی حرتش کرد رویش. پس دومان هاتا وقتی چون تسلیمانی. توی موید کرده که نیستی نیستی از خانقای سید احمد جوابی به چی سید داووتم دشمه شام بودیتنی مهدی سید ویدی ویدی رزور سیولکی تو پاسپورت عراق و سوریت نیا دادگرن پارشت نیا ناچار پشیمانی کرد مو پر سفری دامه حتو مو شیخ محمد نویلینا شیخ شامی خوابت بد حسینه خانقه او تمبل بازا ربو كهمو من دا لیک له خويده من دراني مال الشيخ جګلبه فتريتوشي فيري هيس نكربن كارن هر دزي باغو شر كيشه به مردم فروشتنو يعني قلايبو له خانقه دقلحو تمن شيخونده بو ما اشنه نوي حمادمين كور شيخ السلام بو پوزي من علا شغان بو اوج دبويا بو بركت درس لا مستمل سيد بخوينو له مال الشيخ نا زنم او زیرکتر بو یا خود من، بلام اوانده ده زنم لده منجی و هیز فیر نبونده دروازنیش فرقی نده کردین. هردوگ دا من وک یک دارکاری دکرانو با قدیه برجنیو ده دران. تنیا فرق یک من که هبو او با نگبتی شعری دگوتو خویل من با هنرمنتر ده زنی. بلام شعری چون یا خواه به نسیب دشمناند به. من دبا غیلیان گلتم با شعرکانی دکرد. آخری هر وزینه نو لدوه روش دابو به شعیره که هر برزو به نویه من نو بانجی درکرد. کاری هرگرینگ من راودو پشک دزی باغن مریشک دزین لمالا شیخانو هزار بتفریو کاری نلباری دی که بو. جاریکن که بو سردن حاطب و موامال ملایک جی حیال من بو. لطرسی بازی للایی اما خوی شرد بوا. بابن بهوی دوستان حولی بوده. پیناسی کن با گوریو لسربازی خوید زیوه. لابرانبر او چاکیه دا به باب می گود عبدالرحمن بده دست من پی بخوینم. او بخوشی کنیو سید محمد بو مستعد بو در سیلای ملائی گوره دخویند. دگل او چوما پسوه که بونکی قرانیاغای مامج بو مدرسه فقیانی لیابو. قرانیاغا عاشنه نزیکی باو کن کبیست بوی منیانهیناو تگوندی او فرمانی دا کشوانه لقلایب مو بر روشد لناو فقید. اوزستانه هرچن زورم لبر گران بو دگل قرانی مالی آغا جیامو دبو بپی روشویمی مالی آغا بپزو موا. قرانی آغا براستیشتی که سیر بو. کونپی اوی که زور شروشور دی توی حلکوتو درد کورد گوتنی گرگی بران دی تو بو. آغای که زور بحیبتو بسم. زور کم دوین بو. یاوران که دهات ودیوخان، للای سرو روده تا تاشو شغده بو وک هیکلی بوده متقیل در ندهد. تزبیحه که حال دسورانو، لبن لیوانو دگل خوی ددواو جار جار پیده کنیو، جاری وابو روی گرشده کرد. ودیار بو، که تمنی تمانی پرنهوره زو نشوی خویده کرده و، بلام بدبخت چی؟ دو کریو دو نویو من با جوری تمانی لا سوچه کی خواروی و دباریز لسر چوک دادنشتین. من دکوت مناوراست هرکس ورتی لبر بها تایا لیدان و تی حالدان لو کرن آمده من دالان ورو خود را گرا. پتر ل شش ساعت لسر چوکی مجوله. ورتت نیا. ورزیش نبا. رگی چونه دروش نبه. ناچربون بخون بزمیکم ساز کرد. هرکه آغا چایی لی خافل ده کردین، آورم لمندال انده ده و زمانم دردینه او، لیچم لی, لی خوارده کردنه و لپرمی پیکنینی انده ده، دزبجه آغا بانجی ده کرد، ورن بیان بن، هر یکیی لپاشخان دیو دیوخان شق و زلین و انده درانو دبو بگریانو حاور، دهات نوشوه لکه خوین، آغا ده فرمو هی بی حیائی نه، انگو حسنبیه چولکوری حاجی ملکن، چن بشتر معدبه، Deeperati的人 Director Nbolo بلن and call of Raimarian z 52. During friday, the nation of S money had been taught by key banks critical issues. In the past 10s experience in writing her bases of Adina diji. The following year in his n BC 경ourt Gингman and law Center the Biopawl. gerade in the early stages of silent که برایی که روشن بیری خلقی زمانی خوی بو. حت از مومی دیتی هیس فیر هر وقت تو تیشتم لبر کردو مانای نازانم و تو دبل سر را دست پیاب کهیم. کتیب رزمانی عربی تازه بابتی مصری پیدخویندم. بزوری زورداریش قصایدی کونی عربی پی لبرد کردم که لوانا اویل بیر موا قصیدی امرو لا لسبعی معلقه لامیت العجم تغرائی خوشی زوری لشهرکانی نالی لبر کرده بو. عشقی سید جمالدینی افغانی بو. دنیا که در او اوکو کرده بو و ریچی کرده بو. لپش ساله سلاه ماله من تازه کم کمه تا میکم لخوندنده کرد. لوسر وقت دلین خری که خوناسیلو باربون بون دلم چوبو و سرکی که ارزو آسمانی لبر برد بو موا. دلین افلاتونی دروه ها. ولم باور دکې یا ناکې به جورک ارزوی جنسیم دگل گل او چی جنبو هر پیم خوش بو بیبین مو هیچی تر قتل بیرم نه دچو ګری چرام ددی جمله دنګ خورده بو چاوم دبري استری اسمن مانګ دز بجې دیداری او د هاته برچاو اخم هل د کې شاو فرمیسکم د د باري قتورې او پی بیشم توام خوش ده و که او زر نظر کوکو پوشتو بابه دولمند ومن اگرچه با روالتیش زوردوست بونو زورم نمالی اوان را دبوارد بلام هیچم ندرکن. خلاصه اشقی پاکو خوینم بسردهاتو را بردو پاش چند سالم اگره دامردو کجایوه؟ گرانی خوشویست لیرده بشی چوارمی خواندنوی کتیبی چشتیم جوری هجار مکریانی کتایی حد ترشوی کترو لبشی کتر در پیتندگی نوا شادو منبن.